این هست که این تکتیر شده اینجا خدمت رو فرقا بله، بله،, بله, بله, بله فرار. فرار. اگر هم کسی نداشته باشه میتونه از فرقایی که بگیره و حالا این وقتی آمده باشه این دیگه اشکالی از اینجا هست اومد بله مطالبه اساس غضیه هم، اساس غضیه باید این هست که خواب در شاهنامه ناظر بر حوادث آینده، و پیشگویی میکنه کنه اون که اتفاق خواهد افتاد یعنی از مقبوله که اولیه دین هم بهش میگن رویاه سازهه چون در دین هم دو جور رویه رو پندره می یکی ازغات و احلامه از با زاد و غین و سه فنوسته و احلام با از ازغات و احلام به معنی خوابای پریشونه و خوابای که سر دل آرام سنگین باشه در قریب او او رو رؤیه، که رؤیه در عجیب اینا اون رو که صادقه این رؤیاه صادقه رو که حوادث رو کسی که سمگی روشن داره پوش در آرام خواب میدینه که چه اصطفاق و در شاهنامه تمام خوابهایی که هست به همین نتیجه منجرمشون به اساسای یکی نیست و اون یکی می‌هوید که یک کسی بعد که من به جادو وادار کاری کردم که تو این خواب رو بگیمه به بهرام چوبینه بهرام چوبینه شرم خواب می‌گیره که فردا که جنگی می‌کنه لشگاه شکست می‌کنه و چه چم چم چم چم بحشت از خواب می‌پره و اگر آدم قبی نبود سست می‌شد در خواب ولی من تو آمدم جنگ حالا شیکست نخورده که نباید فرار کنم که هوای این که خواب دیدم شیکست میکرم من باید برم میشه خودم بکنم اون پیش بیاد دیگه به من برای جنگ کردم میره و جنگ می این اون میشه بعد میگیره یکی از افراد قصوم خصم رو و اون میگوید که بله من جادو کردم و این خواب رو من باید شدم در حقیقت این استثناء هم تعلیل همون قا و اینجا به استثنای چیز؟ به استثنای خود خواب فردوسی که میگوید که تقریبی رو خواب بیدم و چه و چه که هست این به نظرم اولین خواب باشه که رحاک میبینه و میبینه که سه تا برادران رو و ترتیباتش رو خوندن حالا چون پونزر رو از اون گذشته دوباره آقایش مولود کنم کنم که بالا اصلا شما را هفته این جهان از شب تیره چون پر رضا همانگه خرد کون شراب تو گفتی که بر کشور لاجورد بگسترد خوشی یا اون که زر سفه بد جا که, مو... که بود موبدی سخوندان و بیدار دل بخردی ز کشور به نزدیک خیش آورید جگر خسته خوابی که دید نهانی سخن کردشان ز نیک و بد و گربش روزگار بر من زمانه که آید به سر چرا باوشدین تاج و تخت و تمر گر این راز با من به باید گشاو و اگر سر به خاری به باید لب مو خشک و رخسار تر گر و بگر جو تموم و اگر سر به خاری به باید نهان یا یا, یا. لب مو خشک و رخسار تر زبان پر ز یک با دیگر اگر بودنی بازگویی راست به جان است پیگار و جان دیبهاست و اگر نشوَد بودنی ها درست بباید علی ز جان داشت شو سروزم در آن کار شد روزگاه سخن کس نیار است کردوشگاه به روز چهارم بالا شو بر آن موبدان نماینده راه گر زنده تون دارباید بسود و اگر بودنی آب باید نمود همه موبدان صرف گند نشو که گر زنده تون دارباید بسود و اگر بودنی بودنی ها بود یا یا سردار بدیم بله. یا بودنی ها همه موبدان بله همه موبدان صرف بله. گنده نگون خور از اول دل دیدگان ترز از آن نامداران بسیار هوش یکی بود بینادل و تیزکوش خردمند و بیدار و زیرک به نام کزان موبدان و زنی پیشگام دلش تنگ ترگشت و ناواق شد بشاد زبان پیش زحاق شد به گفت پردخته کن سرز باب که جد مرگ را تز مادر نزاد جهاندار پیش از تو بسیار بود که تخت مهی را سزاوار بود مرابان غم و شادمانی شما برفت و جهان دیگری را سپو اگر باره آهنینی به پای سفهرت بساید نمانی به جا تسیرا بود زین سپس تخت تو به خاک کمدر سر بخت تو کجا نام او آفریدون بود زمین را سفهر همایون بود هنوز اون سفه مادر نزاد نیامد گه پرسش و سر باد چون اون زاید از مادر پرگوهر به درختی شود بار بر. به مردی رزد برکشد سر به ما کمر جوید و تاج و تخت و کلاه به بارا شود چون یکی سر به بود به گردن بر آرد پولاد گو زند بر سرت گرزه گاب روی ببندد و آرد به ایوان بکن از ایوان بکن به دو گفت زهاک ناپاکتین چرا بنددم؟ چیست از منشکین؟ دلاور به دو گفت اگر بخردی کسی بیدهانه نسازد بدی براید به دست تو حوش پدرش از آن درد گردد پر از کینه یکی گاو برمایه خواهد بلند جهانجود را دایه خواهد بلند طبخ گرددان هم به دست توبر به تیم کشد گرزه گاب سر چوبشنی زهاد گفشاد گوش ز تخت اندر افتاد زوره پوش <تصفيق> گرانمایه از بیش تخت بلند به تابید روی از نهیب چو آمد دل تاجور باز جای به تخت کیانم در آورد پا نشان پریدون به گرد جهان همی باز شفت آشکار و نهان نه آرام بودش نه خواب <تصفح> و <تصفح> نه خرد شده روز روشن بر او این کردم که این قصده همه جعباران بیدونیم که چند تا من اسم بردم که همه اینا و همین ترتیب اول بخشه میشه که یه کسی از مادر داره ما شد و بساط رو هم باید بیجید با اون مرد جعبار هم اعدام میتوندن که از بین ببره و اون تقدیر افتاره چی دیگری بوده نمیتونه و بالاخره کار بوده این اینا هم ارز کنم که این برمایت که جهان از شب چون پر رضا همان گسته از برو برز از چراخ که مثل کشیده، تو گفتی که بر کشور لاوزدرد بگسته از خوشید یافوز زرد هر که از یافوز زرد بیاجه بیشه سپه ود هران،, هران جا که بود موبدی سخندان و بیرازه و به تو کشور به نزدیک خیل شابد بگفتان جگرخسته خاوتی جگرخسته یعنی جگرش مجروب شده خسته یعنی زرطی خسته رو ما الان بشید این زرطی این معنی خسته که ما الان بکنه بلی منده روش میگن این رو در هفتانسان هم میگن که منده شدی یعنی خسته خسته یعنی بعد مسئله مهم اینجا اینه که خود زهاک میدونه که این اساس قضی روشنه که این خوابی که دیده کلکش کنده است میگه فقط که رو هم بگیم بگیم کیه چیه؟ ببینید اینجا میگه نهانی سخون کردشان خواستا زنیک و, و گردش روزگاه که برمند زمانه کی آید که آید به سر مسئله باش این خواب نشانه از میرهتن ولی کند چون چونش از موبدانه که برمن زمانه که آید به سر کرا باشد این تازه دو سرکت هست من جزیات این خوابی که می کنم برای شما این است کنم اون مسائل رو کنیم نه که در احساس خواب گر این راز با من بباید بوشاد و اگر سر خاری باید, باید اگر منی یا یا باید این راز رو با من بوشاد یا باید سر به نهید به خاری هستی که درکون درمی درمی درمی اگر منی یاد موبداً طبیعیست که لاغوت اینجا فیضوسی نمیگه خیلی خلاصه ولی لاغوت میگه که معشارتتون بکنین کاراتون بکنین مثلا نسیجا رو من خبر بیدون میگه آزاد کن میداره که با هم اگر بحثی دارم بودم دارم بودم راهی هم قردوسی فقط خود این می شود که لب موبداً خوش کفت رخصاره تر زبان پر دفتار یک بادگر با هم برم چی؟ اگر بودنی باز بوییم راست به جان است پیکار و جان بیبه هاست یعنی درست شوش بگیم در حقیقت با سر خودم بازی کردیم این بابام که جون تویش عرضشی اصلا نداریم که گر بوندنی باز بوییم راست به جان هست پیکار، جان می بهاست و اگر نشنود بودم ای ها درست بباید همین جونز و جان درد شد اگه درست شو بگیم جونمون در خضره درست شو نگیم نمیدونه یعنی که بابا مو گهه اونم باز میگه که عینگیرم می خوشم سه روزم در کار شد بوده با. سخون کس نه یارست هر داشتار یارستن من یه جرعتگردن کسی جرعت نکرده هر داشتار یارا از همین من این جرعت یارا يارست داشتن یارستن نیاراست. یارست بله مازیشه یارستم یارست یارست بعد نه یارستم بلی مزارج میشه یارم یاری یارت که منفیش میشه نه یارم نه نیارم نه نیارت نه یارم نه نه یارت. یه معنیش این که چرخه نمیکنند یکی هم موزاره آوردنم منفیش هم چرخ میشه آوردن یارم یاری یارت موزارش نیارم نه یارم نه نه بنابراین باید توجه داشته باشیم که اگر نه یارم یا نه یارت آمده بودیم از مستر یارت یا از مستر آوردنی تا همشه بود سه در کار شد روزگار شد یعنی گذشت سخون کس نیار از کرد آشکار به روز چهارم برا شد جا یکی خوربش نه بران موبدان نمایندرا نمایندرا صفت فائدی مرک شبی ولی مرک خم نشد دیو دلیل اینکه که اون جزع ترکیبیش پشت اگر راه نومد جلو، نمیشد راه نماینده، نمیشد راه نما اون گندهش می افته یعنی پساوند خایبی و توی صفت مرکب بشه، می افته. ولی اینجا چون مرکب، که ترکیبش پشت صفت آمده، نی افته. شواهدش در شانهان زیاده جهاندار به گیرند شهر به شادی و رساننده رسانند بعد گیرنده شهر، شهر رو بیدیم برمیشه شهرگیر رساننده برمیشه بررسان اون تسمنده فایلش می‌گذیم هم همونده به روز جواران بر آشوکچا بران موبدان نماینده راه که گر زنده دار باید بسوز و اگر بودنی ها به باید. باز اگر من بیاد یعنی بیاد زنده باید تشریف این سر دار یا باید حرفا رو بتونم البته اینجا دار رو نمی که گفتم براتون یا نگفتم ولی به هر حال از آن مجدد میگم اگر گفتم که دار به خلی مفهومی داره که ما امروز باش آشناک می سیم. در حالی که نمونه داره قدیم کنجم چشمونه سلیف ایسا داره بگیم سلیف یعنی دار بگیم اصلا کلمه دار یعنی درخت افت و ترتیب دار زدن این بوده است که بابای مجنون رو بردن سر یه درختی یه تیری یا یه تیر ساده یا می توانی سلی فرد نکن هم تیر ساده دست و پاش محکم با کناف دستشو از پشت و خاشم از جلو می بستن اون تیر و می رفتن. اولا خود اون صرف بستن تناقی این رو برد می و اون گانگره می شد خانقرای ها شد، سیاه به خاری خار می مرد بدترین صورتش که از گشنگی و درد می صورت آسومترش این بود که سنگسارش کنن یا کیر بارونش کنن یا کفش کنن و به این ترتیب بودتر پراید گاهی هم دستوپاشو میکویدن، ما می نرسلی به عیسی دیده یه دستان رو باز کردن، پا هم بو هم میخیردن. این دار زدم. البته حسنش این این بوده است که کسی به که دار میزدم، یه چند ساعتی امکانه میدیده که اگر کمکی میخواسته بود، او برسه، برسه برو و او نگاه بود. یعنی تناباره ببرن از دار بیارنش خواسته. این زنده هست. شواهد بسیار در داستان‌های عوامانه داریم که می‌گویند که پهلوانان آورده بودن و دار زده بودن می‌خواستن بیوارانشون کنم که تفاه‌های اسلام بیشتن و چکردن آزاد و هم در داستان‌های غیر رزمی که دوزار دار زده بودن که داستان خیلی جالب توجه یا درباق خیلی عضو می‌کنم درباق بخواه‌های زنان که می‌گه کنم که ما کی دو هزار اردوان دار زده بودن اونجایی سریع قبرسونین دیشب زن جنونی داری داره میکنه می‌کنه، گری و وقتی اون خیط سایه می‌زنه دو, دو بالا دار که خانم چیه؟ هم تو خیلی برادر چی بگم؟ این شوهر منه، من جون من بود نفس من بود، ما عمری با هم گذروندیم، چه کردیم چه کردیم چقدر تو من بودم، همیشه من، راحت من، ندارم و ببینید حالا من دست آدم نیست تو حالا آن به دنیا هست، نمیشه که حالا به حالا هم بکشی، اینچه زنده نمیشه، اینچه حرکتیه و تو حالا این رو که حالا فرصت رو بخونی، یعنیت رو بخونی، در فراموشی هست، بعدم من هستم تو کاری بکن، من ناظرم تو کنم چه کنم چه بکنم، یه من به دارم زنک میگه که خب من جا برای چه... یعنی مردی که میگه اما می خیلی کار سختیه و اینکه تو منو پایین با هم باید بریم و یه مقدار یا میگیرن و پدر تو در میرم اون وقت زنک میگه که این که پای نداره که کی... خب یه پایین شوهر من تازه خاکش کرد <ۯ> <تن reconcile> من که درش میره تو من که مرده است مرده که احساس من یه با جناب دوز شوهر تو خرب در میرن مرده ای که هیچ درازی هم داره این دستانه میگه اینی که نمیشه این سه، چرا که داره من بیش ندارم اصلا خوش تو بشم چیزی هم ندارم اینجا بیششو بترشتیم شکار کنم بایی اون که قصه ندارم بیششو میکنین بیششو میکنین تشار کشه هست نمیشت میرن و خانم دوباره خانون سعادت رو با این درمون دوست میده به زندگی خیلی خیلی شیرین نفاسون ادامه میدن با یه مدتی رو دوزه نخوش بشوند دوزه نخوش و که بعدش بد بوده و داشته چیزی داشته بی مردم اینا بعد بازن تشکیل داده که من دیگه چه بکنم ببین چه های وقت بختم ببین خدا چطور جورسونم باز میخواد اینا میگه چه والا خانم خود اید نهره تو بالاخره برد شوار بکن دیگه یالا دنیا همینه من فقط یه خواهش عزیز درم او میگه که اخوان مردم بری شد نهره من نمز کنم که این ها های مردی دار زدنه و من میگه که این که میگه که دار رو زنده دار رو باید نمز کنین یعنی به خاری خارون بالا بمونوین یا تیوارون بشین یا همونجا از درد بمیریم به هر جد دار این بوده و این قصده هل قاویز کردن که سره سو چار دقیقه کلک به کلی این خیلی تازه است من دقیقاً نمیدونم این ترتیب این دار رو که از چیه ولی احتمالاً توی ترکشنگی چیزی باکنین منم اینجا محفظ ندارم خودم کردم و میگفتم که از که این درست کردیم ولی به هر حال مردم خودشون رو به این ترتیب حلقاویز میکردن نه مرا خودکشی. این هست ولی به عنوان مجازاتی خیلی تازه هست من محکوم دار در طول تاریخ همون از که عرض کردم و دارم به هم معنی درست که گر زندتان دار باید بسود یعنی یاد در حال زندگی و جا کنید اگر بودنی ها رو باید نمود یا بودنی ها رو همه صرف سرفکنده نگون، پر از حوضه، دیدگان پردخون از آن نامداران بسیار دوش بود دیناده رو تیز پوچ دو بیدار و زیرک به نام اسمش زیرک قرطمند و بیدار و زیرک بنام کزان نوبدان روزد پیش گام باید بگم که زیرک کلمه فارسی فرمی پیش نیست چند کنیم باید زرنگ کلمه تورکی سی فارسی نیست زرنگ فارسی نیست دلش تنگ تر گشت و بگه اختلش سر آمد ناباک شد، گشاق زبان پیش زحاک یادم رفته من، مکرر در مکرر من به خاطر سفردم که اینو بگم و یادم رفته حالا میگرم خدمتون من گفتم که زحاک یعنی آجیده ها و کلمه صورت دیگری یعنی هست از کلمه عیده هاک اینو گفتم اما اون چه نگفتم اینست که از مستر ذهک در عربی معنی خندیدن که موزه کسی در خواست کنید زه هاک سیغه معنی بسیار خندندی اگه عربی بشون، در عربی بشون. بعد از قدیم هم در داستان‌های عوام و هم علما آدم برای این لحظه معنی کنه، این کاری به آجده نداشتند همزه اسمانی در قرن سپرون در سال بینیم سه اون رو زنهاکی رو دفتن برای این در اصل اسمش ده آک بوده ده آک یعنی ده ای و ده تا عیب داشته بعد به زحمتم ده تا ای بسرین قطار میکنه که سر داشته و برست داشته و جزام داشته و داشته و زهرمار داشته و دفتن دفتن. دفتن. که آدم موام ناخوزی که ازار رو نمی این مال این، در چیزم، در تومارهای نقالی هم یه توماری داشتن مال حالی سنبابای مشکیل بود که نواقع چیزی بود، راجب زهان که بسیمی که بله، یه روز اینه نمیشیدی بهش گفتن گاه گاه خندید از اون روز سلوشن زهان تا اون روز اصلا البته این هست که در داستان قریدون هست که قریدون پسرها شد و هم دخترهایی که برایش برای که سراش خواستگاری میکنه اینا اسم دا یه مدتی نداشتم یعنی گویا حالا بحث خیلی مفصله نمیتونم الان به اون مدتب برسن ولی گویا در اون آین پاگوشایی و اون مسائل اینیسیاسیون و که در قبایل خیلی افتدایی بوده نامگذاری هم میکرد خیلی مهم بوده که مدتی بعد سعی کردن اسم و بچه رو بر ذاتیات و اخلاق و رفتارش کسید، یک. دوم این که اگر مثلا دختری رو به اسم صدا میکردن، این برای افتت و تقوی او به جریه دار کنند بوده. به همین دلیل هم است که صدوسین و اقال خدا بیامورد تو محل ما پسر نداشت. حالا اونا یه پسر داشتن صدا میکردن، حسن،, حسن، حسن، این زنش برادر فقط داشت. تدام می‌کرد، از خر آقا، نمی‌گو بعد چه اسم خانمون نمیشه بری این بعد میگه که دخترایی هم که فریدون دخترای شاه سر یمن رو که برای برای برای پسرهای فریدون کاری می‌کنن برای یعج و سرمطور، اسم نداشتن و این اسم نداشتن، البته تصحیح شده در شامانان دشت ولی این مربوط به کار دیگریست ربطی به این که خواه خندید و بعد از اون روز اس شروع شدن صحاوج و قضیه موسی برجد می‌خواستم بگم که هم اون ده هاج و هم زه هاج معنی بسیار خنده کننده است چون هر دو مفتی است و زه هاج شروع دیگه‌ای است از اجزاهاتون بدونید و هم بدونید که فوزلایمان تو این طله ها خیلی افتادن و خیلی از این قبیل اینا به بهشون میگن اتیمولوژی پاپولر یعنی ریشه شناسی عوامانه این ها ریجه شناسی عوام و نسل در از ده های دیگر این علت چند نفرداختنه به علمی، به کاره به علمی چیز. به هر حال اینو خواستم بگم که بدونی دلش تنگتر گشت و ناباک شد گوشاد زبان پیش زحاک شد بدون رو پردخته کن سر زبان. پرداختنه از من منی خالی کردن بدون گفت: تخت کن سر زباد که جز مرگ را را به منیه برایی که جز برای مرگ کست مادر نذار مرگ از،, از مادر زایی شده روزی خواهد مرد حرف ندرد جهانده پیش از تو بسیار بود که تخت مهی را بود فرافان فموش آفانی شو مرد. سفر و جهان دیگری را سفر اگر باره آهنی نی به پای باره دیوار که اگر دیواری از آهن باشی سپهرد به ساعد اگر یادتون باشه در اون قصه در اون آفرین فردوسی که مسعود مروم مسعود ساپه میگه اگر کاغه یکی توده بود سپهرش به صبحان خود توده این هم, هم. این مضمون از همین اگر باره آهنین بیده بای سپهرت به به جا کسی را بابد زیم تخت تو به در آراد سر بخت تو کجا؟ چه؟ نام او آفریقون زمین راست پهره ماییون هنوز هم سپه مادر نزاد همیشه قبل از تولد در اون قصه های نزیر هم دیگه همیشه هم پیش از تولد اون شخصی که با جفار پنجه در پنجه میکنه خبرش می برای که یکی از اقلامات اون مرد جفار پیش از تولد این بچه است که بعد طبعا پیش به هنوز آن سفه بز مادر نزاد نی آمد و سر باد چون اوزا اوید از مادر پرهنر به سام درختی شود باربر مرد به مردی رسد برد کشم سر به ما کمر جوید و تاج و تخت و پلا به بالا شود چون یکی سر به برس به گردن بر آورد ز پلا زند بر سر از گرزه ببندد تو آورد از ایفان بکنی یعنی طوری مرتب میگه که گرزه گاوروی، گاورنگه به امثال اینا و قبلا ارز کردم که گاورسر شاخه اینونم بهش میگن همون گرزه که رستن رسیده، سام رسیده، رسیده و دلیلش هم اینجا همینجا میگه بدون گفت ها که ناپاکیم چرا بند دادن، چیست از مجد؟ دلاور به تو گفت اگر بخردی کسی بیباهانه نسازد بدی میگه که پدر این دست رو تو تمام میشه هیچ گا به پرورندهش تو میکشید ولی خب نمیتونه که چیز کنید، نمیتونه که چیز اینا که بدون خواسته، او اتفاق نمی. برای قوید به دست تو روش پدرش عرض کردم قبلا که روش مرحنی مرگه و یکی از معانی روش که نادر البته سر کلاس هدب باقت با تون مرگه برای قوید به دست تو روش پدرش از آن درد گردت پر از کیمه سرش چون گفتم هوش به معنی درده، به معنی مرگه اینجا ناچار باید یه نفتیگر هم خوزی در شاهنامه، در خزانه کابوس از یه داروی اسم برده میشه که هم نوشداروی شهریان هم ساخته نوشداروی بعد از مرگ صحراب آمدی و نوشداروی بعد از مرگ صحراب یعنی چیزی که درد نفرد این هیش نبتی با کلمه نوش نداره پس انا نوش دارو یعنی داروی ضد مرد هم در نوش دارو و هم در انوشروان انوشروان هم یعنی انوشروان انا روان یعنی دارای روان جاب. در هر دوتا اینا صحبت نوش نیست صحبت حوش این مرد آ به دستی تو موش به از آن درد گردت پر ازتونونهسب. یکی گاو برمام یه خوافت بودن. جهانجوی را داوی یه خوافت بودن. قطه به روایت برروسی عرض کنم که گا هست گ گاپ رو بسیار سوبت ها نوشتن، فرماایون نوشتن، فرماایی نوشتن، فرماایی نوشتن، برمایه نوشتن همثال اینا نوشتن، و فریدون بعد اینکه همین جست و جوی پیش میاد برای این دوری گیر بیارن رو بکشن میبرش پیش یه زاهدی در یه غاری زندگی میکرده و اونجا این ظاهد گاوی داشته و میگوشیر این گاو فریدون پروش باشده روایت های دیگر هم درباره فریدون هست که به جایی این گاو فرمایه وزیریست و دانشمنده و فریدون رو میبرن به تبرستان در در قصه گوش، فیل فیلدندان مثل اینکه هست آقای یوزو مطینی مطالب مفصلی در مازندران و اینکه مازندران کجاست در ایران, در ایران نامه نوشتن مقاله بسیار مهمیه در این با. و یه روایت دیگری از داستان زحاک اونجا میگن که در اونجا میگوید که در اون روایت میگوید زحاک هم بر اثر خوردن گوشت یادتونه که ابلیس برای اولین بار او رو باعدهاش به خوردن گوشت تا پیش از او گوشت نمی خوردن فعلت در خوردن گوشت بیماری خرچنگ گرفت در اون سرطانی و اینا قدس سرطانی بود که بالا و سرشی میگوریدن حالا فهر جهت اون کتاب کوش پیلدندانم کلت وکیمی تحصیل کرده و آنجانی به روزی منتشر شد و هر حال روایته مربوط فریدون فردون یکی نیست ولی این روایته که فردوسی گرفته و به کار برده همین است که فردون گاوی داشته که این گاب دایش بوده و زهاتیان این غاب را هم نشوشه میگه بر به دست تو روش از آن درد که از دست نسرش یکی غاب بر خواهد بودن جهان را دایه خواهد بودن تابعه گردان هم به دست توبر بدین تین کشاد گُرسه گاسد چوبش نزهاج کوچا دوش ز تخت اندر افتاد حضور یکی از نشانه های باز خیلی, خیلی جالب اکثر تکرار میشه این است که پادشاهان در موافعه مصیبت زدگی و شنیدن خبرای بعد و شنیدن خبرای هورناک از رو تخت بارد میشنن میشتن دوزنید و گاهی بر خودشون واجب میکردن که تا این بلا رفت نشه رو تخت نشید این جزئه که میگنم اون گوشه های آداب و رسومی که در شامام ها هست هیچ کس بهش اولی جوهی نکرده مثلا. ما هیچ کار آنها رو نکردیم ما شامام ها رو نکردیم این چه برسه کاری دیگه حال این هست اینکه که میگه که زحاک از تخت افتاد این ممکنه که قش نکرده بلند شده آمده پایین به نشان مسئلوت زدگی به شمیدن خبر اولاد برحال ارز کنم که چوبش نیز زحاک با چاکوست تخت اندر افتاد و دور رفت توش رفت توش ممکنه از لحاظ مبالغه رو شدید گران مایه یعنی اون نوبت حادی بزن حاکم شد برای اینکه مواده کلک خودشم کنده بشه چون عزیزه گران مایه از پیش تخت بلند به تاوی روی از نهی بگزن برای اینکه مواده در همین هین در همین حیث و بیس سر ایشونان به باد بری بودشم چه آمد دل بر باز جایی یعنی باز به جای خودش آمد این اضافه میشه معمولاً این باز حرف اضافه است نه اضافه میشه ولی اضافه میشه باز جای آمدن یعنی باز آمدن به جای چون آمد دل تاج بر باز جای به تخت کیان اندر آمد تا. نشان فریدون به, به گرد جهان همین باز جست تا عاشقار نه آرام بودش نخواب و نخرب و روز روخشن برای باز به هر حال زندگیش سیاه و تمام فعالیتشم برای این بود که بتونه این گیر بیاره باید این خدای تعالی که بیگری میخواست. یعنی این او بود اما به دلیل این بیوچ بودن این کدوم این از این کوشش تو سردنظر نکرد چون که گیم که بعد ما که و بعد ما پر آمد بر این روزگاری دراز کشید ها را به تنگی فراز بود فریدون مادر بزا جهان را یکی دیگر آمد نهار به والید سرب صحیح همی تا زوم پر به جهان جون با پر جمشید بود به کردار تابنده خورشید بود جهان را چوباران به بایستگی روان را چدانش به شایستگی به سربر همی گشت گردون سپه سربر هم جا... گشت گردون سپه شده رام با آفریدون به مه همون گاب کش نام برمایه بود ز گابان ورابر ترین پایه بود ز مادر جدا شد چه تابوس نر به هر مویبر تازه رنگی دگر شده انجمن بر سرش بخردان، ستاره شناسان و هم موبدان. که کس در جهان گا چونان ندی نز پیر سرکاردانان شنید. زمین کرده زهاق پر گفته بود به گرد جهان بر همین جستجو به گرد جهان بر همین جستجو فریدون که بودش پدر آفتین شده تنگ بر آفتین بر زمین گریزان و زیخیشتن گشت سیر برا ناگاه در دام شیر از آن روزبانان نافاف مرد تنی چند روزی به باز خرد گرفتند و بردند بسته چیوز بر, بر سر آورد زهات روز خردمند مام فریدون شدی که بر جفت او چنان بر چونان پرانک بودش نام و فرخونده بود به مهر فریدون دلاکنده بود دوان دل خسته روزگار همی رفت او یان بدون مرزا کجا نامورگاب برمایه بود که نابسته بر تنش پیرایه بود به پیش نگهبان آن مرزار خروشید و بارید خون بر کنار به گفت تیم این کودک شیرخار زمن روزگاری به زنهار دار پدروارش از مادر اندر پذیر و وزین گاب نقزش بپرور بشیر اگر پاره خواهی روانم تو راست گراغن کنم جام بدون کت هواست پرستنده بیشه و گاو نغز چون این داد پاسه بدون پاک مد که چون بنده بر پیش پرزند تو بباشم پذیرنده پند تو فرانک به دو داد پرزند را بگفتش به دو گفتنی پند را سه سالش پدربار از اون گاب شیر شیر همیداد بشیار زنهار نشد سیر زهاک از اون جستجو شد از گاب گیتی شد از گاب گیتی پر از گفته بود دوان مادر آمد توی مرزار چون این گفت با مرد زنهاردار که در دلم ایزدی فراز آمدست از ره بخردی همی کرد باید که آن چاره نیست که فرزند و شیرین روانم یکی بمرم پی از خاک جادوستان شوم با پسر سوی هندوستان شوم ناپدید از میان گروه برام خی... خوب رخ را به البرز کو بیاوند بیاورد فرزند را چون نوند چو غرم ژیان سوی کوه بلند یکی مرد دینی بران کوه بود که از کار گیتی بیندود بود فرانک به دو گفت ای پاک بین منم سونگواری از ایران زمین بدان که گران فرزند من همی بود خواهد سر انجمن ببرد سر و تاج زهاک را سفارت کمربند او خاک را ترا بود باید نگهبان او پدربار لرزنده بر جان اون پتی رفت پرزنده اون نیاورد هرگز به دوباد سر خبر شد به زحاق یک روزگار از آن گاب برمایه و مرزا بیامد از آن کینه چون پیل مست مران آن گاب برمایه را کرد پست هر هرچه دیدن در اون چار پای. بیا کند و زیشان بپردا، جا. سبک سوی خان فریدون شتا فراون پجوگید و کس را نیاب بیوان او آتش اندر پکند به پای اندر آورد کاخ بلند بسیم بسیم بسیم بسیم بسیم بسیم هیچ کنومش در عدب فارسی نظیر نه باید یک چند تا داشته اینا مقدماتی بود که انده می عرض کنم و امشب صحبت همین بود که امشب چشید اجده ها اجده ها را به تنگی پراز یه وقت اجده ها روز و روز شمارش محکوس آغاز شده بسید. بجسته فریدونز مادر بذار بجسته یعنی مبارک و فرکنده جهان را یکی دیگر آمد نها تازه تازهی برای جهان ببالی، برساون سر و, و سهی، این کلمه بالا، که یعنی قط هم به کار میره، قط و بالا، از همین مستر بالیدنه، بالیدن یعنی بزرگ شدن، و بالا یعنی تا اون حدی که آدم بزرگ میشه، و با الف مستریست. مثل درازا و پهنا و جرفا، این هم میشه بال بالیدن بال بالا به معنی قد به بالی برسان سر به سهی همین تافز و همی فرد شاهنشایی این هم که میگن فلان کس فلان کس میباله به طور مجازی یعنی بزرگ میشه قد میکشه قد نمیکشه افتخار میکنه همون که میگن سر بلند شد بابا قدش به بلند نمیشه این هم بالیدن نومد جهانجوی با فرد چمشی، به کردار تابند و پرشی کنان، این بیت، یکی از بیتهای بی نزیر هم است. جهان را چو باران به بایسته دید. بکنید بارون در دنیا نیاد، زندگی به کلی از بین میره، بایستن یعنی لازمه جهان را چو باران به بایستگی روان را چو دانش به شاویستگی برای جان آدم به انلازه دانش ارزش دارون سزا باران به سربر همی گشت گردان سته شده رام با آفریدون به مهر. سته رو گفته که گاهی رام میشه و گاهی سرکشم میکنه در این روزگار رام فریدون بود همان گاب که بر برمایه بود ز گابان برای برترین کاه بود ز مادر جدا شد تو تابوس نر گاب هم گاب محسوسه گاب که این قهرمان رو شیر میده گاب مخصوصه و مشخصه گاو اصلا هیون مقدسی بوده بین آریایی یا نه تنها بین آریایی یا بین حل مصر هم چنم که می بوده و به حسوس تنبال گاوهای خاصی می گشتن. در بین اقوام سامی هم در قرآن بزرگترین صوره قرآن سوره فقره است که معنی گاو ماده است و داستان مفصلی داری که من حالای اونجا داستان صوره بقره نمیتونم بگم ولی توصیه میکنم اکیدا بهتون که قصص قرآن رو من بخونید بدون مطالعه قصه‌های هایی در قرآن کریم آمده امکان مطالعه عدب یا هم وجود ندارید حیرت فارسی همون گاف کشنام برمای بوز گافان برای برترین پای بوز مازر جدا شد شد تابوس نر تابوس ماده اون چتر نمیزنه اون زیبایی نر نداره همه یه بیشتر مرغان هم همینطورن ماکیان مرغ خانگی خروزشی که زیباست قرقابل اصلا مرغ مادرشی ریختی نداره مرغ قهوهی رنگیست با خالای مثل مرغ نیمچه با خالای سفید با نه صدا داره نه هیچی فقط تخ نداره خروز قرقابل قرقابل نه نر دوم دراز بسیار دراز بلندی داره و گردن بسیار زیبایی به رنگ خوبصه گذه با می خونه مادر جدا شد شد تابوس نر و هر موی بر تاز رنگی دیگر گاب پید مشخص شده انجوان بر سرش بخردان چون می دونستن ستارش ناسان و هم موبدان که کس در جهان گاب چونان ندید چونان مرکب از چون و آن نز پیر سر خوردانان شد یعنی سر سفید گفتم پیرین ملازمه با, با سالخوردهگی نداره سری که سفید باشه میشه پیرسر ولی معمولاً با سن که موی آدم سفید میشه این است که اکثر سالخوردهگان موشون سفیده پیر به معنی سالخوردگی هم زمین کرده ز پر بر به گرد جهان بر همین جستجو دنبال گاد و دنبال فریدون پریدون که بودش به در آتین این آتین اسمش در اوستا اسپیان واسه سه نقطه اسپیان اس روییا بود اون پولادو تعریف داشتیم بعد میشه آتین بعضی ها دارن که نه همون آبتین که شده درسته اینجا دکتر خالدی آپتین رو گذاشته که ظاهرن مال نصخهاش دیگه همین نصخهاش از قدیم الایان و حالا من یه نیگاه توچکم میکنم بل همه آپتین دارم همه تریدون که بودش به در آپتین شده تنگ بر آبتین بر زمین دنبالش بکن بگید و زی خویشتن گشته سیر برا بیخناگاه در دام شیر اختاد به خلیق از آن روزبانان به ناپاد روزبان به معنی همون جلاد و مهمور جلب و مهمور اسس و از آن روزبانان ناپاک مرد تنی چند روزی به دو باز کرد. باز می‌گینه که تیل و فایل با هم متوقع نکرده باید باشه تنی چند روزی به دو باز خوردند باید می‌گه باز کرد. گرفتند و همون تنی چند بعد برش جمع آمده گرفتند و بردن بستهش و یوز بر برسه و رو برسه ها یوز یزه پیونی که خیلی به سرعت رام میشه، غیر از جوزپلنگ. خیلی سریع رام میشه، خیلی هم پنیر دوست داره. و با پنیر اغلب رامش میکنن. پیونی بسیار جلبی است و میره دنبال شکار و وقتی که رام شد میبرنش و خیلی پیونی صریبی شکار رو میگیره میفاده. گرفتند و بردن البته یوز به ترکی معنی صدی که ربط به این ظاهرتش نده گرفتند و بردن بستش و یوز بروبر ساورد زهاد و یوز خودمند مام فریدون رو دید که بر جبت او بر چونان بدرسید فرانک کدش نام و فرخونده بود به مهر فریدون دلاکنده بود در ضمن میگه که فرانک هم یه شاید از برکت وجود فریدون یه نوع رابطه با ماورات ماورا داشته منطقه رابطه ایزدی نه رابطه اهریمنی. این است که یا حساباً به طور تورپولی میدونید که زنان و به خصوص مادران از جهت غریزه مادری شمع بسیار خاصی دارند. به اکثر اوقات یه چیزایی به دلشون برایت میشه روی اون مهر شدیدی که نسبت به بچهش داره. به ارحال این میگه که یه چیزایی به دل من افتاده است که اینا میکنه و فریدون هم ما میدونیم که افسون الهی میدونسته و با ما برای طبیعت نهدونیم فرامک بودش نام و فرخونده بود مهر فریدون دل آکنده بود آکندن یعنی پر کردن دوان داغ دل خسته روزگار همی رفت تویان بدان مرزا کجا که نام بر برمایه بود که ناو بسته بر تنش پیراغیه بود معنیش این نیست که پیرایی به تنش بودن نه میگه پیرایه داشت زیبر داشت بعد زیبرش بستنی نبود که بهش بسته باشن دیورش خدایی بود که نابسته بر تنج پیرایه بود یعنی پیرایه از طرف خدا بتن بدون اینکه که بدون اینکه کسی زینتش بکنه زینت شده کجا و برمایه بود که نابسته بر تنج پیرایه بود به پیش نگهبان آن محضار خروشید و بارید خون بر کنار به دو گفت که پودک شیرکار زمان روزگاری به زنهار دار زنهار یعنی زن زنهار دادن یعنی امان دادن زنهار داشتن یعنی کسی رو در امان خود داشتن زنهار خوردن یعنی امان رو شکستن و خیانت کردن و نظاهر زیاد زنهاری زنهاردار انگشتری زنار حافظ میگه از لحل تو گریابم انگشتری زنهار صد ملک سلیمان هم در زیر نگین باشد انگشتری زنهار انگشتر چاه یا حاکم بودی که به اون فرنوان امان میدادن دادن به طرف به دو گفت که این کودک شیرخارز من بوزگاری به زنهار دار پدروارش از مادر اندر در میره چون پدر که ندیش که تو پدری کن به اینو از مادرش بپذیر و از این گاو به نقضش و از این گاو به نقضش به پرور بشید. البته مثل این که از بخت فردوسی اینطور برمیاد که فرانک هم میدونسته که فریدون باید از این گاو ترزیر بشیر این به نظر میدونی یعنی رای و چیت چیز بکن و بعدم اشاره بکنی که اتمن از این گاو به شیر بده این سیر افثانه طوریست که که از پیش میدونسته و اگر پاره خواهی روانم تو راست پاره به معنی رش اصلا معنی پوله و قدیم رشت به گرفتن رو بهش می گفتن پاره ستانی پاره بگیر. یعنی رشت به گرفتن پاره خواهی روان هم تو اگه حق حساب از من می جان من در تو. توست و اگر پاره روانم تو راست هست کنم جان بدان که تو هست جانمو گه روان کنم که هر کی میخوای و میل داری برات آماده بکنم در برابر این کاری که راستنده ایشو گه و چنین داد پاسخ بدن پاکمه هست که چون فنده بر پیچ فرزند تو به باستم پذیزنده پنده اینا همه نشان فره ایزدی فریدین احتمال هست که مثلا این خود این مرد هم خواب دیده باشه یا به یه صورتی آگاه شده باشه یا کسی به او گفته باشه که این بچه رو میارن تو تحدیفت نینه این هست که بدونه. با اینکه مادر میگه که هر میگندن و هر بخوای میگندم من میکنم فلان میکنم تو آدم اه... چیزی هم که نبود آدم گمنام میام نبوده آدم, نبوده آدم. تو زحاج میفزوده به اسم نووال شوارش میبرن از این میبرنش دیگه بعدم دوز جمعچییان بوده و از همون سلسله بوده و از اون فوار بوده چه سودی برای خودش ولی میبینید که اون پرستندهی هم اجرت از این نمیخواد اینا همه نشان لطف است که بردرقه راه پریگونی که چون بنده بر پیش فرزند تو بباشم پذیرنده پند تو فرانک به دو داد فرزند را به گفتش به دو به گفتش روشین فایلی به دو گفتنی پند را سه سالش پدر از اون شیر همی داد حشیار، زنهارگیر زنهارگیر رو حشیار زنهارگیر هم واسه یک تلکی بود کسی تو او رو به زنهار پیش بایش گرمته بودید نشد سیر، زه ها کزان جسته بود سه سال با اینکه مادر بچه نداشت و کسی نبود و چیز، زه که آنبال کار بود شد از گاب، گیتی، پراز کفت بود توان مادر آمد سوی مرزار چنین گفت مرد زنهاردار که, که اندیشهی در دلم ایزدی فراز آمده است که در دلم ایزدی فراز آمده است از راه تخردی همیکرد باید این کار خدایی است مجبورم این کار بسنم همیکرد باید کزان چاره نیست که فرزندوش این روانم هم است ببرم پی از ول که جادوستان یعنی انجا میرم. یعنی من چه میرا ایو میبرم یعنی که قدم من چه خطر گونه چان یا گونه کن میذان گونه چن چوام با پسر سوی هندستان چوام ناپدید از میان درو برم خوب رخ را و سو یکی از مسائل مسئله ای که گفتم دکتر متینی یعنی هم مقاله نوشته که مازندران کجاست؟ حالا ما می مازندران هست اینجا حتی اون قاره دیو سفیدم اونجا نشون میده. باقی اینجا بوده که رستم چه کرد؟ ولی اینا مورد اعتماد نیست. و در اینکه مازندران کجاست، خیلی مطالب مفصل نمی که متأسفانه و می‌بینید که البورسکور رو طرف هندوستان و اینجاها نشونش دارن می‌دهند. یکی از قرائن، البته اینا به اصطلاح استوره است و بعد کم‌کم قردم کم می‌شه به هماسه و در هر جهت در هماسه و استوره اینا زمان و مکان و تاریخ و جغرافیا خیلی نیست. اون کسانی که سانکی اینا رو واسه مفاهیم تاریخی و جغرافیایی اینا پیدا می‌کنه از حرفا می‌زنه از کلمات لفظ اما یک نکته است اون است که خاندان پهلوانی ایران شهرهایی که مورد نظرشون اون هستن و جایگاهشون سیستان و کابل رودابه مادر رستم دختر مهرب کابلیه زال رو می به کابل اونجا اون دختره نبینه عاشق می کابل شما مسافرت نکردید کابل دو ساعت راه تا مرز هندوستان یعنی تا پیشابر سر راشد شهر از اونم جلالاباد که جزء افغانستانه ولی شهر گرم یعنی جزء سرزمین هند با خواهم حساب میاد بچه هم پیشابره حالا اسمش پاکستانه ولی اینا همه جوز هندوستان. بنابراین چون خاندان پهلوان ایران جاشون اونجا بوده اینی که خیلی هم است که البرزکو از اون طرف نشون میدن یا میگه سام بچه شو برداشت زال و وقتی سری ستید بود بود انداخت رو خب سام از کجا؟ بعد مازندران میره دنبالی لشکرکشی مفصل سام اینا همه نشونی هایی زر که حس نظر آدم دقت میکنه این با این مازندرون فعلی ما جور در نمیاد. باید یه قاعده همینه. حالا به هر حال این شایسته دقت نظر زیادتریه که سری کلاسی که ما اینجا داریم بحث میکنیم دیگه جای نش از این بحث نیست اما آخواستم نظر توجهتون جلب کنم که این مسائل کجا وجود ده. ببرنم پی از خاک جا دوستان شبم با پسر سوی نعزیز بوده بایه هندستون که بچهش مخاد بغلش کنه بره شبم ناپدید از میان گروه برام خوب رخ را و البرز می بیاورد فرزند را چون نوند نوند اینه هم همینجوری که عربات تمام زندگیشون بیشتر زندگیتون رو شطر میگردید با در در فرهنگ های عربی شما از 100 تا اسم شطر میتونید پیدا کنید در ایرانم هم از قدیم خیلی مهم در لطه عرب داشتن ولی عرب که نزید شهر بودن هم هست چون که دیگری میخواد و باید دیگری داره حرض کنم که چولک، نوند، سما، چرمه، باره، بارگی، رخش که واسه اسم یک عصبش، خنگ رعنی عصب سفیر، نور و بسیاری اسمهای دیگه این ها اسمهای عصب و یکشم نوند. آورد فرزند البته من اینجا باز حضور ه ندارم شا... شب... بازم باشه بله بله شب رنگ چپی بیا آورد فرزند راشون نند چو قرم جیان سوی کوه بلند غرم شکار توهست این بزرگین ها رو ب خیلی سریع میگهد یکی مرد دینی بر آن کوه بود که از کار گیتی بیاندو دنبال ریاضت فرانک به دو گفت کی فارسی منم سوغواری از ایران زمینم فردون رفتید ایران مرد زاهد ایران از ایران و همینه که میگه که مازن در اون رفته بودون روایتش گفتن دکتر متینی یاد کرد از تو شکلی دندان جغراف مازندران اون مازندران رو به همین دلیل که اقوام هندستان اینا نشون می‌میدن. آوناک به دو گفت که فارسی منم سوگواری از ایران زمین بنابراین اون مازندران جز ایران نبرد بشه. بدان این گران ماه یه فرزند من بنابراین خبری که به زهاج به مادر فریدون هم رسیده که این بچه فرعی ایزدی داره و بچه باید پرورش پیدا کنه و آماده است برای اینکه آماده بشه برای اینکه وظیفه تاریخی خودش انجام به اینها رو میگه اینجا بدان که این گران ماه یه فرزند من همین بود خواهد سر انجومه ببرد سر و تارج زهاج را سپارت ک قرار بود باید نگهبان او. هر بار لرزنده بر جان او. حاجیروف فرزند. حاجیروف فرزند او میگمر نیاورد هرگز به دود باد سایه. در کنال مهربانی این بچه را خبر شد به زها یک روزگار منتجات تعویض بچه نمو خبر شد به زها یک روزگار از آن گاوب برمایه و یا ی آمد از آن چینه چون فیل مست مران گاوب برما حالا گفته بود که به چینه گاوب برمایه و به کینه پدر بیرون که میاد سراغ و کاری هم نکنه آمد از آن چینه چون فیل مست مران گاوب برمایه را کرد جزان هرچه دیدن در او چار پای بیفتند و زیشون به پرداخت جا پرداختن هست سبک سوی, جا سوی جان فریدون شد فراوان پجوهید و کس نیاد به ایوان خونش آدیشون به ایوان و در اندر پکند به پاینده آورد کافی خب من یه چند دیگه می خونم یا خوش دارید ببینم خودم دیگه می خونم و تا رفتن میشه تو توپ بر آفریدون 28 از البرز کو هم در آمد بدهاش. برای مادر آمد. و گفت که بکش بر من نهان از نهو. باز این مسئله‌ای بین تمام قهرمانان هست. سهراب نه شوهرش که بده. برزور میاد پیشه مادرش میگه داره من چیه هر کدوم از اینا و اینا بچه شما رو پنهان میکردن برای اینکه میترسیدن که دشمن به اینا دست بگه ولی بچه کم کم احساس میکرد که نه این از سرشت است و باق دیگری داره و میومد برای تحقیقات معلی سراغ مادر چه قضیه از چه قرار برای مادر آمد پجروهید گفت که با چای بر من نهان از نهان بگوی مرا تا چه بودم که کی هم من به تخم از کدامیم بودم چگویم گویم کی هم بر سر انجامه یکی دانشی داستانی بزن داستان زدن گفتم این مسئله زدن مسئله معبول بزنن قرانک به دو گفت تینام جوی بگویم تو را هر چه گفتی بگوی خونزه سالش شده یک که در جریان بودش دویش شد تو بشناس که از مرز ایران زمین یکی مرد بود نامه و ز تخم کیان بود و بیدار بود خردمند و گرد و بیازار بود زه تهمورس گرد بودش نجام پدر بر پدر بر همی داشت یاد به در بود ترا مرمرا نیک شود نبود روز روشن مرا جز بدود چنان بود که زحاق جادو بپرست از ایران به جان تو است از او من نهانت همیداشتم. چه ماهی به بعد روز بگذاشتم چقدر روزدار بدی گذاروندم داری گذاشتن رانی گذروندن چقدر روزای سختی گذروندن پدرتان گرانماوی مرد جوان صدا کرد پیش تو روشن روان. سرانجام رستم سوی دیچهی که کس را نزان دیچه اندیچهی یکی گاب دیدم که باغ بها سراپاو می رنگ و رنگ و نگاه نگهبان او پای کرده به کش نتوانم نگهبان او پای کرده به کش نشسته در پیش شافش افتخار میکرده به اونجا به دود آدم روزگاری دراز همین پروریدست به بربر به ناز زپستان آن گاب تابوترنگ رنگ رنگ به معنی صفتی رنگ این تابوت صفت سرانجام از آن زپستان آن گاب تابوترنگ به افراختیتون دل آفت پلند سرانجام از آن گاب و آن مرزار یک آگه خبر ست بر شهریار ای آمد بکشتان گران ماهی را چنان ای زبان نهربان دایی را و زیبان ما تا بر خاک خاکت و کردان بلندی مقاب فریدون برا شفته بکشا گفتار مادر برا آمد به پر درشگهش پردرد و سر پرزدیم عبروز خشمنده آورد چین چون این دا پاسخ به مادر چون این دادپاسخ به مادر که شیر نگردد مگر بازماویش بیش بچه شیر رو مادرش میزنه میفتش برشیم اینکه باید اونجا باید هر چیز میشه هر بیرد میشه من باید در این جریان دلده دلده. چنین داد پاسخ به مادر که شیر نگردد مگر می‌بینید این هست یعنی با تاکید تمام میگه جز و آزمایش این دلیل است یعنی هیچ راهی وجود نداره مگر دد مگر بازماغش کنون کردنی کرد جادو فرست مرا برد باید بشم چی بفوگم به فرمان یزدان پاک برارم از ایمان زهار به دو گفت مادر که این رای نیست تا چهی هزار ساله به دو گفت مادر که این را نیست تو را با جهان سر به سر های نیست ای دنیایی تو نمیده اشت درد به دو گفت مادر که این را نیست تو را با جهان سر به سر پای نیست جهاندار زخا که با تاج و گاه میان بسته فرمان او را سپاه تو خواهد هر کشوری ست هزار کمر بسته او را کند بار سن جزین است آوین و پیبند کین جهان را به ششم جوامی من به این حرف دقیقا درست دید جوان چون تجربه نداری و وقت تو تله یا شین خواستن آین داره روش داره مبارزی کردن روش داره تو با دنیا که نمیتون طرف اینقدر قضیه رو سهل که من بلنشم برم جزین است آین قاوین و پیوند کین جهان را به چشم جوامی مبین که هرکه نوید جوامی چشید بگیتی جز از خیشتن را ندید نوید به شرابه به عنی اختصاصاً شراب خورماست به عنی شراب است عموان به عنی شراب خورماست, خورماست. اختصاصاً فمن مدت‌های مدید فکر می‌کردم که خرما چیزی می‌تونه شراب بده. وقتی انگور آب داره، آب شور، آب، اینو می‌ریزیم که شراب. ولی خرما سفته. بنت تو آبم هم نمی‌شناسم چیزی جنس خمیر. یعنی دور تمام دورت, دورت میشه. این چه عَرَض موجه ازش کشی؟ تخمیرش کنند، تختیرش کنند، عرقش که شراب چیزی سال های سال که بودم من. این چیه میگن، این چیه؟ در اسلام که شرابتوزی حرومه، بنابرای اینکه قایده‌ای، هر چیه، لدین باب اه... نه؟, نه خیر در قرآن نه خیلی، قرآن گم میزن. یه چه تو عوض زاکانی است اگه اشتوانم که میگه اگر کسی چیچی رو او رو بخوره حروم میگه یا اگه رو بخوره حروم میگه یا رو بخوره حروم میگه نه میخواب چطور شده که قاطی کنیم که که نبیس میشه حالا اعزارش شده اونم میگه که من و اگه ما شخواهد بریزم سره از ساره از ساره چه تو؟ بله اونجا از یکی از عگزاش که یادم که شونیز و یک شونیز و است روزیاتش الان یادم نیست چون مال خیلی سال پیشه الان همینجوری یادم اومدید نبی آمد یاد این مساله بفتاده ولی ظاهراً باید شهد خورمان خورمان وقتی میچنن از درخت صفته و زرد، و باید بزنانش جای گرم جای خارجی اختار نکنونه برسه بیرون برسه همینجوری که این پروسه رو در مورد موز میبینین که از سبز میچنن میارن بعد زرد میشه و بعد کم کم خال میزنه و بعدم هم از خورده هم میابزن مجبوری بوده تاسم این موز بخوریم که خورمان هم همینطور بعد یواش یواش مثل این که آب افتاده باشه رنگش تغییر میکنه و تمام اون زردی که سفتم هم هست و هست شل میشه و بعد شروع رو به شیره دادن با خروشش میچینن میذارن اونجا توی چیزهای مثل هوبز درست میکنن سیمانی که البته نشد نمیکنه اونکه اون شیره خورمان مثل قلیزی سمچین رو بره میسه بعد این شهد خورماست که می‌دیدم ظاهراً از اون شهد شراب می‌ستن ناز از خود با هر حال نویز اختصاصاً نویز یا نوید هر هم به کار معنی شراب است عموماً و شراب خورماست اختصاصاً که هرکه نوید جوا به گیتی جز از خویشتن را بدان مستی بدان مستی اندر دهد سر به باد تو را روز جد شاد و خرم اما عوادث جور دیگری پیش آمد و پیشه دو که فریدون برسه یک کسی پیدا شده تو و علم ولند کرده بود داستانش مفصلی که داستان طابعی آنگره که ما نمی رسیم تو که مطالبه این و قبل از اینکه فریدون برسته به شهر و بخواد کمر بکی این زه هایی آماده شده و اینا همه جز داستان زه هایی که فند کردم است که اون دفعه هم داستان زه هایی مفصله ولی در حقیقت پادشاهی خود خودی هایی که دو صفحه دو سی صفحه بیشگره نیست یک برگ اینجا برگ دوم گفتارن در خوابیدن زه این خواب زیادن زه در حقه در حقوق داستان فریدون یعنی تقریبا تمام داستان زهاک هاک فره فریدون هست خیلی هم و هنوز هم این داستان خواهه آهنگره با امیدوارم برای خودتونم جالب باشید بخونید با هم امیدوارم که با این دقتایی که ما تحملاتی که میکردیم و جاهایی که با نیستگیم و هنگوشون نکاتی که این یه سرماش باشه و یه راهنمایی بلی که به خود ما همه این روزیات رو نگفرم ما تو محدود صفحاتی شوستاد نخوندیم سانوه هایی که من بویا هیچ نخوندم که از دلاشت هم نمیده که در من دور بیسانس عملا نمیتونستن در مدرسه این که نخوندم طوره دوشتری مرمون زوزانفر یک جلد از شاهنامه رو مقرر فرم دودن جز این که ما بخونیم و او رو تر کلاس درستا فرم دادن جز یک جلس و مصدبی رو می فرم دادن حافظ کن شاهنامه رو با خود مقرر یعنی که شما به اندازه کافی الان مقدمات برای اینکه بتونید خودتون شروع بکنید و شاهنامه رو بتونید انشاءالله داد مطابق دقت بکنید و سنجیده و فندی پیش برید و یاد داشت هم بکنید مطالق رو برای اینکه نظیر شدیش رو پیدا شد روی فیش های پوچیک یاد داشت کنید محتیش هم بنویسید برای اینکه گاهی شعراء شانان خودش شعراء دیگه شو تحصیل میکنه و راه های اینکار رو باید خود نگاهد. حالا البته ای فرصتی بود انشاءالله بکنست اون قسمت هم بود شاید بازم گفت اما بازم بگیم چیزی بیر از همین نیست برس من 50 صفحه بیستم به سی صفحه یه هم این صورت بخواد بده داده اگر هم بده بازم نه با چهر پنجا صفحه خب آمیدوارم دیگه و همهاتون خوش بگذاری انشاءالله من برای تعدیلات میرم دلویت خودم و بعد در تماس این با سید سفند و بگیم یه خدا یعنی گودال بله، بله، بله، بله، خانم کام همه رو کردن دفعه اولشون هم نیستیم کردن، البته هر دفعه محبت کردن و سینی دادن، دست استاد، بیمه این رو سیدم سینی آمده و هیچی، و هر حال و شهر خیلی سپاس اگر مازمگران این حوالی باشه این شرکت این بکیم آزمگران شاخرات شاده همچی یه بیستانش هم میشه گلر زنیر اونجاها هم همطورا اونجاها چیز نمیشه من نوای استبایی شادی ایش قطع خانستان شده فهمودن گنسی رو نه هنده همونجده جاهایی مثلا سبزه و برده سبزه منتها مستی گرمکونه همه آخه میگه دو نگار موقع میشه با این خب خودمونم رو هم همین جوری هندس کار همین نه مازن من مالی میشه اسناد مدارک ا ا ایشدا سایسد بود. ها ایشدا سایسد آلمان بود. رو وقت بنده آ ما آهای مطلق. <تصفيق> مطلق. زنگ بزنی من نشونمش بهتون بدم. من نشونش ندارم. آهای من ندارم. اونگر تلفنش هم داره. تلفن زنگ تلفنشو.